آن شب که مثل همیشه در ساعت هفت، در سالن مجلل هتل بابی رو ملاقات کردم، از دیدن مهمانی که همراهش آورده بود سخت در هم رفتم. آخر من از فعالیت های اضافی تحصیلی جدید خود چیزی به او نگفته بودم و حتی اشاره ای نکرده بودم و دل توی دلم نبود که همین که تنها شدیم این خبر دست اول را به او برسانم تا از تعجب دهانش باز بماند. مهمان، زن جوان بسیار جذابی بود که چند ماهی بود تلاق گرفته بود و با بابی زیاد رفت آمد داشت و من چندین بار او را دیده بودم زن روی هم رفته دل بود و من هر حرکت او را برای خودمانی شدن با من و نفوذ در من حتی به طور جزئی به حساب دعوت تلویه او میگذاشتم که در اولین وقت فراغتی که پیدا کنم یعنی همین که بابی که به روشنی برای او بسیار موسم بود دست به سر شود با او باشم در طول شام پرخاشگر و حرف بودم دست آخر هنگامی که مشغول خوردن قهوه بودیم به طور مختصر نقشه هایم را برای تابستان شهر دادم گفته هایم که تمام شد بابی دو ساله کاملا عاقلانه از من کرد و من با خون سردی و خیلی مختصر جوابهای دندان شکنی به او دادم مهمان بابی گفت راستی که خیلی محشره و بلحوثانه منتظر ماند تا نشانی خود را در منترال از زیر میز به او رد کنم بابی گفت خیال میکردم با من میای رود آیلند خانم ناشناس به او گفت ای عزیزم چرا دلت میخواد مثل کنه با آدم به چسبی؟ بابی گفت کاری ندارم فقط میخوام ببینم آخرش چه کار میکنی اما من در رفتار بابی می که در زن مشغول عوض کردن بلیت کوپه معمولی قطار به قصد رودایلند با بلیتی کوپهی تخت خواب است. خانم ناشناس که از چشمهایش برق هرزگی می به گرمی به من گفت فکر می کنم جواب شما از همه جوابهایی که توی عمرم شنیدم شیرینتر و تعریف بوده.